جانسی سیو سال پسور شده و سال پسور خواهی حاجیت ظاهریه شده و این گفتیم متنابع نیست و خاطر این که حاجیت همش ظاهریه حاجیت واقعی نداره حاجیت و, و غلائیه و اگر این ظاهریه ساکش و غلائی اگر نبود اگر این بود تکمیلی بود بود بگفتیم واقعیت داره این جزباد سه تا عنوان رو بسرک کرده بودیم یکی بساسی و یکی شکاک و یکی قبطا و هر غیر خیلی و جز افراد شاز از اوگلا حساب میشن و بنابراین احرامی که بر اوگلا هستان میشه بر افراد شاز از اوگلا هستان میشه یکی بسواسیه این تعریف که براش نوشتیم یا تعریف های که نیاز به تأخوندار شخص بسواسی اینش موقعه قطع به تواهر پیدا نمی کنه یعنی قطع به ترخیص پیدا نمی کنه یعنی قطع به نجاست و همیشه قطع به نجاست رو دارم در تا هم که دا به نسبت به هر چیز رو پیدا میکنه، شخص شک که به شک های غیر اقلاعی اعتنام مونه تا یقینا اینها ها نمیتونه قطعشون و شکشون خودتیت داشته باشه که خودتیت به که به سیره فضان است اگر برای حجیت رو اقلاعی بگن اقلاعی نارو محکوم به حجیت نمی. شخص شکاک از نظر ارتکازی شخص میگه اینکه یعنی شکش اینکه خود اینکه یعنی خودی شکم قط ها مثل همه من زعوب و بود شکاک من زعوب و شک بود من خودی من شهر شکش ضعیبه به این رو حتما رو امون رو به کتاب های و لغوی که قدتا یعنی این ماده قدتا وقتی تزدیف میشه تزدیف زاهدی داری و تزدیف باطن میشه این ماده این طوریه ماده ای آف و تاوه این باشه این طوره. البته نزید هم داره بری قاعده کنی نیست حروب فرمانه باهم دیگه ولی شکار دو سه جهاز زرف ساده اون جهاز زرفی سیادتر دیده ولی فتا در این ماد سفی 156 نوشتیه حالا پا راضی کنید خیلی در این که طبای و نحوی این رو لابلای کلماتشون دارن مثلا هم حوامه این رو داره جمع و جمع مدانه. سویوتی در خیلی از کتاب داره خیلی از کتاب های لغمیه مثل کتاب که زمخشایی داره اساس و لغم اساس و لغمیه یکی بیندنی کتاب های لغمیه خیلی ازیز اکاریوهای بود مثلا زرب هم زرب هم زره با پیه زره زرب دیه زره با علایه زره با قمه زره با علایه زره با بینم یک کنن خیلی زیاد میشه و خیلی سمیده بالایی درمه امره یکی منم و من. من خیلی نیست کتاب ها نباید ترجم کرد تو به اون کتابه به سپا رو ترجمه کردن هستفار رو ترجمه کرد، شواهد رو رو ترجمه کرد. نه ترجمه ایست ترجمه شکنیه گوز کردن فلسطن میشه وقعه ناعهدی میاد فلسطن بمیشی و تو میشه رو مالا سدرا کسی هم انگار نهیم نمیده نه اجازه شاق بدم کسی خود اصفار بخونه با منفرستان که بخونه در این هر عدلیات رو بقید باشه که که کتاب های دیگه قلاصین هم فهم داره در این کتاب ها موازه خیلی از این مطالب رو افرادات را داره خیلی از اینها رو مثبای مونهی فیرو میداره که چقدر درمین ما هستن وقتی برای لغت نداشت نکوز دیگه ایس تو ارنامه ها نیست روان و نه به روان اون با هزار آشبتگی شد چیزی برد نیست نمیخونن کتاب لغتی اصلا در کار نیست انگار نهی آقا مراجعیه بعدم مراجعی نمی کنم تازه بعد ما آدم نداریم به مراجعه به لغتی اصلا دقائقی برد یه دستی باید باشه دست اشتقاق کتاب اشتقاق رو برم نمیخونن از اشتقاق ابن دو بید. صاحب جمعه را که دو اون موقعی را مثلا خوندیم و ام بیدی بگن آنی هایی دارت میگونن دیرس چند تا ترهی اومده بودن سی و تا مثلا اون سر رو تمام کرد سرز چه خوندن این چی ولد نمیدون امین طور اشان بازارم سر هر چی خدا روز سر خیلی خدا میدونه مقتدر شده فرهنگ و علم مقتدر شده ولی حالا وقت بذارید و ترتیباً هر نفری یه نفر رو دستش رو بگیری کافیه یه نفر از دست یه ای نفر دیگه یه ما در رو بیاره به این چی درها واقعا آخری ما قرآن رو بپهمید ها چه من آخر رو بپهمید علم اشتغاف ما اصلا بلد نیستیم علم اشتغاف نیستیم که مثلا که قاف و قاف و لام قول در هر مادهی به هر ترتیبی بیاد اوش اول لام باشه یا اول قاف باشه اول لام باشه یا لام باشه به هر ترتیبی بیاد به معنای حرکت به معنای تحرکه تحرکه سریه آخو خوبا باغلا خوبال خفوف و خوبال خوبا خوبا حرکت این ناشاعت اللیل یعشت دوستان و عطبا مقیلا قیلا یعنی حرکت نه حرکت در ترجمه های قرآن نویشتن حرکت صحبت کردن وان چی بگی به این ها چرا اینجوری ترجمه میکنن علم اشتقاق میکنن برون دو سال وقت بزنن دو سال وقت بذارم این کتاب های اشتقاق و از علم اشتقاق رو بخونم بعد مرموش از سبسیه نقصیه این کتاب هایی که اون اشتقاق ابن دورهی رو که آدم میخونه من یه زمان برکنیدم در های ششبه شعری از یک عربی چقدر زیبا بود یا خلی یک بارد قبل بلتا بل بل, بل, بل, بل بارد به نواز زنطنی و افروف زلزان زنطن ره بیده همش هم اینطور که این نشاط میاره قدر درس درمیز ولی که ما این ها را همه را حض شدیم فایده حالا در نوابط با قطاع علم اشتماع میگه تضعیف علم که ظاهرن تضعیف شده تضعیف تضعیف باطنی میبارد قطع یعنی تکرور در قطع خود ماده قطع یعنی قطع کردن و شکستدن و قرار کردن خود ماده شدن وقتی میگرد از میشه به اون در اعلان آقایی در سر خوندین از من در اعلان اول آخر میفته این مسئلیش موقع نمیمد موتلل ولی ساغه نمیشه حرص نمیشه به خاطر یه قیبه ها به این وسطش با وسطش شما بیایم تزدیفش کنیم در این مادده و انصالش سر از تزدیف در میانیم در تا منظر او پا بود چرا قطفش زعیفه به خاطر این از صفحه ست و پنجامشیش جیم منظر و فقط قول مناشری و مقادری و اسبابه که ما ظاهر من کلمت شکاک این در محتک از دوباره یه معنی دوباری اون بریم داشته باشی من معنی هم داره در ارتکاز شکاک شکاک میگن شخص یعنی به هر احتمالی ترتیب میده و در همه چیز شک میکن این هر چی آنم هم. به این ده زی فن و سطح ظاهرم باشه من از ده زی فن مذاع باهم. دوباره، و من منظور فقط او و به ماده به این ماده. بعضی از مادته ها بازمال حده بینید قدی ها بعد متیقنشن. فمن حسن در اون من اصباب زعیفه قیل و قداریه فرای اتدبهی مطلقا موارد قطع تریقی و فی موارد موضوعی من دون فرق مرگم و مامن حاضر جمع فه این نقرد هجتون عقلیتون مطلقا هجت عقلی هست هرکسی قطف پیدا میکنه، برای خودش بین نمو و بین انلا هجیست قطف پیدا کرده نباید نواز بخونه قطف پیدا کرده که باید کل از انجام بده قطف داره برای خودش هجیست برای هجیست اقلایی نیست ما اون چیزی که در فکر میخوایم جامعه بشرین میخواد هجیست اقلایی این در اقلا باید هجیست باشه اون همه این بخصا برا ابقاع نظام اغلایی دیگه نظام اغلایی رو انسان به هم نزنه ما قردرع پیدا کردیم میشه از باید بکشیم نمیتونیم بکشیم معذور نیستیم جیت عقله به معنای معذوریت مطلق یعنی انسان له یعنی و رها تا هر چیز قردع پیدا کردی انجام ده قردعر پیدا کردی شراب خوبه بخوري قردع پیدا کردی باید داد و بیداد کنی داد وبیداد کن پیدا کرد خت ولی این رو اغلاق رو تو قد پیدا کرده که خلان مسئلی باید بگید نه از اون از ما نواید بگید ولو قبض به خلاف واقع قبض دارید هم ندارید بگید گفتن هر چیز درست نیست چون اغلاقی رو خودشیت نمیدونن. دونن که هر چیزی مضر به بغای نظام اغلاقی و شمونات اغلاقی باشه خردید چون همین احکان داریگه ارگه پوینت نظام هم غلایی پس حجت باید حجت باشه. با حجت از باید و دکته باشه و حجیت و غلایی تائید از حجیت عقدیه بخاطر اینکه خود حجیت میدونه این همه حجیت میدونه ازا در باب قضا قویترین چیز قوی ترین کردن ما قوی ترین چیزه و حجیت کردن تو نیست که بگن نه ضعیف بیینه از کجا میاد چیز میگه که نمیگم از همه درو بخورن یا شهادت درو بدن از یک حجت اقلائی خیلی خیلی قوی در محاکم معتبره و همه اینا رو حجت میدونن چون نفر شاهد، سه نفر شاهد، چهار نفر شاهد یا پنجه نفر بیاد دستم بود اینا مجهد اقلائی اسام شد <تصفيق> یعنی بینه و بین الله به اون درک اصفر جهنم دیگه نمی افته ولی ظاهرا محکوم و احکام ظاهریه میشه شخصی خط پیدا کرده باید مرتد بشه اینو به این و بین بی الله حدیشت باید جهنم نبره ولی الان اعدامش میکنن اوغلا اعدامش میکنه چون حق نداره هم نداره ابرازش کنه ابرازش کرده اعدام میشه ولی جهنم نرسان برد برش قد تا اینجا نوشته قد قطع شوچیت داره برای خودش در اعمال خودش اون چیزی که داره نفت میشه نسبت به است. یعنی بمج... هر چیزی که مرتبط به اغلا باشه قطع شوچیت هست به نسبت تکاریف خودش چرا حدیثیت میتونه جانده نوشتن؟ یعنی ایمو... بین هم و بین هم خودش با خودش نده موضوعی بوده فامیلی که موددا و سابق میکاشته این کاری میکنی ولی هر کاری مونده بوده، یعنی دیگه کایدشان نیستن. از یعنی و ولی موبو مولاست اینجا هم پهلا باید ذاتو وغالای باشه باید نماز با حواله این احکام به معنای مولاست که ولی باز بالغان انتخاب نداره همین خاص بنویسیم فرق نداره تکالیف شرعیه نفسیه خود اشراعی وغالاست پیدا کرده که نماز رو خونده دیگه نمی بعد پیدا کرده که نماز نباید بخونه، نمی‌خونه. خودش نمی‌دونه که موعلا نداره. همین نوشته، این چه حرمینه؟ میشه که در میشه نماز اینطور میشه نداره. اصلا شهر دیگه شهر، درکه این نماز رفت و نه اصلا نسبت به تقاضی شرعیت هیچ ارتباطی برقرار نداره اون چی از شری شما با این موضوع اونجایی که میگن نمازش طولانی شده نماز خارج شده یا نشده شما با این موضوع واسه بگید انجام شده دیگه دو دو من خودم اون کسی که نمازش طولانی شده یک ساعتی می‌خواد خب شما با این موضوع تو باید اینجوری بگید که نمازش صحیحه چون خودش رو خدا خودشا میدونه تو نماز دیگه پیگانه بشه چی میشه همه که وقتی بگی از نماز خارج شده پیگانه از نماز قادر میشه بس بس نه اون نیست اون تیه کسی رو نمیدم کسی نینا نه اونو نماز اون نه در نگار خودشی شبیه بقلا ندار بینم و بینم دا قد قدره روزه نباید بگیم نمیدیم در تیه بقلا ندار با مسئولیت رو در اینده شونات و غلطیه فرصیم کنیم به شهر هم احکام علمانیه. این ها بیدیم این, بی... این مسئله فرقیه دیگه در هم پیدا کنه به و به او غلطیه این ایشون رو نمی‌کنه. خودش آره این بو حقا آره یه شمس رو پیدا کرده و این طوری بخونه حالا 20 سال این در خونده گناه این نداره اقاب این نداره حجت و قلاهی نیست ببینه اون از خلاف برخلاف, داره؟ نه برخلاف نظام و یک ای کشتنی اهدی هم نداره کسی رو بکشه در ما وقتی اساساً واجبه شروع بشه بگه تون خودش تکالیف شرعیه خودش نه کشتن نه نه. کشتنه که قبلا خوندی تکالیف شرعیه خودش الان یه نفر باشه در بین اقوام اصلا نماز ما هیچ دینی نداره محکوم مثلا اقوام نیست چرا پس اگر اون آقا نماز نمیخونه شد شوخی نداره چرا نداره ببینم آدم معاصر این نماز اینا نمیخونه روز نمیره اصلا معتبر نیست ولی جزا بله. اقلا هست دین رو باقی اکارای اقلا نکنید اقلا هیچ کدام از شعوناتشون ارتباطی به دین نداره اول، بله <تصفيق> بله اقلا ها جدشش ندونن آن باید هر چیزی که در ارتباط با شعونات اقلاییه و اقای نظام اقلایی یا برخلافش باشه اون محل بحثه. به اشخاص فس... در اشخاصی اشخاص هیچ فرقی مونه مسئولیت مطلقه. و چییت عقلی ببینید ها چییت عقلی این رو بحث کردیم این مسئولیت مطلبه محصول. شما به هر چیز در بیدا کردی انجام بدی عقل میگه محضوری او بگن این طور بیسه من همه نسان عبد شده بحث ما در شخص قضاء قضاء را هم معنا کردیم کسی که مناشئ قذش ضعیفه <تصفيق> یعنی از خواب قذ پیدا کرده به وجوب نماز جمعه لو فورس که حاصل بشه ما سریع قط بحث نمیکنیم کسی رو قطعه بحث هم بحث نمی‌کنیم کسی که از خواب برایش علمی حاصل شده به اینکه این حکم شرعی ثابته از اصطلاب، از جف نمیدونم از اسفار عربعی ملاسد را به احکام شرعی داره میرسه حجیت داره یا نداره؟ این میگیم حجیت نداره، برای خودش چرا حجیته؟ اگر کسی اصفار رو خوند و تمام احکام شرعی از همین اسفار استنباد کرد برای خودش حجیته، کسی نمیتونه بگه حجیت نیست ولی برای دیگران نداره از این شخص نمیشه تقلیب کرد و خواهد این باید استنبالش از کتاب و سنت کشه بنابراین از نظر کبروی تامه از نظر سغروی ناتمامه پشت صفحه 157 نوشتیم شخصی به احکام شر از خواب از خوراک نمیدونم از اصطلاب از اینا نمیرسه این راه خودشو میخواه حالان نسبت به احکام مطابقه به احکامی که در موضوعشون احس شده این موجه دع نمیگیره اون رفت که به بالا نداره این فای این که نوشتیم قطقه تا وجهتون عبریتون مطلقا یعنی بدون هیچ مسئولیتی شخص معذور دارم همون تفسیر کنم معذوریت مطلق یعنی در ترینجی مقدسی موضوعی به موضوعی در بعضی مواردی احض شده اونم باید متعارف باشه نداره دیگه مطلقه بالا تصدیه کردن به همون دیگه شما چرا اون گیر میدی به پایین به من بالا بالا نوشتم فی موارد القطط طریقی و فی موارد القطط موضوعی من دون فرق بین همونه نوشتم چرا گیر میدی پایین پایینش نوشتم قطع حجتون اقلیتون مطلقا یعنی معذوریت مطلق بدون مسئولیت این چطوری ترجمه شما علاوه تهی مقام تکالیف شرعی من از وجوع الالحجج او کالیه علاوه از ذهن اعتماد عله حجج ذاتیه نفسیه عقلیه که عدم صابت حال مناش و قضاییت معتبرت فی مقام احتجاج تکالیف شرعیه که مرتبط به دیگران باشد. بل احکام شرعیه مترتبت آن موضوعات ته واقعیه و اذا حصل العلم بها تنجزت علیه ولو از ضایع استرداد باشد. وفی موارد الموضوع و ول قطع الموضوع به خبر و القطع المتعارف غیر شاست و قطع القطع لا یعنی فعییت الموضوع مقیده بالقط قطع قطع هم پایده نداره ظالم تر خبریت شهیم بگیم این شخص قطع, قطع این پیدا کرده دیگه پس بودی برای ثابت نه برای ثابت نیست قطع قید متعارفه اشخاص قید متارف احکام متعارف رو نداره این رو در با معاملات سابقا هم دفتند دوباره باز بگم یه بار اینکه که مرحوم آیخویی با مشوری اختلافی دارن مشروع میگن معاملات صفحی باطله معاملات صفحی باطله شما یه چیزی به یک میلیون میردید دادی به 100 هزار تومن این باطل سفحیه یه چیزی سد ازار تومن میردید می شما خیلی به یک میلیون معاملات صفحیه باطل میدونن مشروعی آیخویی قائل به این نیست یه تفسیری دیگه قائم شده فرموده به اینکه معاملات صفحی درسته معاملات صفی باطله و معاملات صفحی اشکار ما یه تفسیری سابقا هم گفته بودیم به اینکه معاملات صفی صحیح ولی نه ای که آیه خوری میگه و نه اون اخلاقی که مشهورن نفکش میکنه معاملات صفحی صحیح منتها احکام معاملات اوقلاهی رو دیگه نداره این خیارات اوقلاهی اصلا درش اگر شخص معامله صفحیی کرد، معامله اش درسته ولی خیار به نداره خیار تخیر نداره خیارات اوقلاهی رو نداره خیار مجلس رو داره خیار حیوان رو داره چون خیارات شرعیه. ولی خیارات اوقلاهی رو دیگه نداره به شرط معامله صفحی بکنه بعد بگه آثار معاملات غلای عملش مترتب بشه اون رو نداره اجازه سه مول سابقا هم گفتیم خیلی هم مهمه که مشهور بیان واقع بشن بین که معاملات سفری مطلقا باطله آیا غوی قائل بشیم اینکه مطلقا صیئه ولی ما به تفسیری شدیم خیلی هم بهتره به خاطر که مرحوم آیا در خیلی از موارد برش ایاد شده که شما این معامله سفری رو چطور میتونید محکوم به این احکام با اینکه رو قبول لذا خیارات و قلایی درش نیست ولی خودش سهی اقدام کرده دلش خاصیت تو معامله کرده ولی خیارات و قلایی رو دیگه نداره و در معاملات مکرو هم گفتیم همین هر کسی در یک به خرید بروش کپن و امثال اینها اینها خیارات و قلایی رو نداره لذا نمیتونه بیاد بگم من سرم رفته معامله مکرو معاملات سفری هم, هم ای موخندر قرار اگر معاملات قرضی اون میگن درستی نداره مروهای خو یه خوبی داره اونا رو میگه ضعیف. ضعیفه هر چیزی با مبناش بوده نعمت روایت زین حالا اونا رو اون باید جواب بده جواب ندادن. با اینکه و قلاویه سلطی به روایت نداره نه نبیه نمی قرار همین باشه نفتی قرار یه قاعده و بلایی ما سند نمیتونم حالا مهم اینه که اینا رو آقای باشه قطع قطع و جیت نداره متقام چرا؟ چون قطع منزع و فقط بود چرا لزعف مناش بنابرای روغانه نمیتون بگنی این حجت غیر و قلایی؟ علال کثوع بروجع فی تحصیل علم به درهم شرعیه الا اسباب همتارفت غلایه من کتاب سنت را به تقریر کنه قطع در آره در ماده ته اینم درسته که ما لفظ کثوعی نیومده ولی هو در روایات نیومده ولی به احکام فوقه ها همین قطعا فهم نداره چی یک لفظی در روایات اومده باشه که بیان بگیم در حدود و صغور این لفظ بحث کنیم چه اینکه نه به احکام فوقه ها همین باشه ولی شک هاگم هم اومده کسی رو شک اومده که بخش رو بخش رو بخش نه دیگه انا شیخ انساری قطع رو میگه قطعش حتیت داره به چه معناست؟ است؟ قطع قطعاً میگه متفاوته، چه چیز دیگه؟ چون جزاتیه قطع. البته تفسیری ادبی این ادبی عینش تشدید داره، یعنی ذات ادبیات خیلی خیلی باو دوستردیده. ما اگه ادبیاتمون درست بود این همه در مخصوص بیز آلوسی، آلوسی در تفسیر روحالمعانی که یک تاشیه هم بر قطر ندا داره مالب نوشان خیلی مطالب ریز ادبی اون داره که ماها بلد نیستیم ماها به معنای آن بلد نیستیم ندیدیم و نخوندیم داره که اگه شما یک اشکال خیلی قدری رو کردید بگو لقایل نمیان اون اشکال قبیه لقای لن یا قولی بلی اگر متوسطه بگو انگلت انگلت اگر ضعیفه بگو قیل. ببین جد فنون ادبه ما بلد نیستیم می دارم هم که بلده ما نمیتونیم کتابش بخونیم مراجعه نداریم ما هی گی دادیم به این حرفا تو فقه و هی هیگ ما کرد در ما کرد در بخونیم بعد از اینکه اینا تمام میشه مسجد ازم جا هست بشین اونجا بخی ما یکی دوتا نیست ما ادبیات نخوندیم واقع ادبیات نخونده میخوایم در قرآن نظر بدیم میخوایم قرآن تفسیر کنیم میخوایم قرآن ترجمه کنیم خیلی از ترجمه ها گیر داره من یه نمونه باز الان یادم اومد بگم و اما من اعتا و تقا و صدقابل حسنا دید احتمالا فقط صنایت سر هوول لدیوس ها. من ااعتها خوب کسی که بخشش کرد و عا کرد و تق یعنی از روی تقوا بود به خاطر خدا بود و صد قبل حسنا فقط صنستر و اوول لدیوس را یعنی ما اینو به طرف خوشی ها و خوشبختی میبریم و کارها رو برش آسون میکنه. این صد تا حسنا رو عامه که تفسیر کردن صد قبل اسلام. اما میگم هم همون شبیه هم این چیزا ترجمهش کردن با اینکه اینطور نیست در قبل حسنا اصطلاح عربیه یعنی عادت با معرفت باشه صدق قبل حسنا کسی خوبی کرد خوب بود کاره دسته درد نکنه در قبل حسنه اصطلاحه نمیشه بیان تصدیق اسلام تصدیق اسلام که اینجا راهی نداره استلاح صدق ابل حسنان پایینشم داره و کذب زب کسی بی معرفت باشه براش کار خوب میکنی بعدن دیگه اون نتیجه کار خودم بود شما نتونستی کاری بکن. پس ترجمهش میمونه ادبیات محقوقی میخواد. باید برگرده به اون چیزهایی که نخوندیم بخونیم تا معلوم میشه تا منظر فقط شد. خوب دارن داد میزنن خودشون شکاک منیش زعو فشکو به خاطر اینکه که مناشش زعیفه اگه کسی بخواد کتاب بلاغی رو در حوزه جمع کنه حالا اونهای که معتبر معتبر پنجه تا کتاب خوب داریم که مطالبش هست مونده ما رسو ندیدیم اگه از این مسیر وارد بشیم پس این دتا در الفاظ روایات نیست منتها مثب احکام فوق هست. میگن قطعا شکاک و یعنی اینا نه اونم مثل حال ما نمیخوایم گردن بذاریم ما هیچ گردنی رو نه میکنیم نه گردن میذاریم هیچ کاری نداریم ما متون رو ترجمه میکنیم میخوایم آقای خودشون یک مبنای درست کنن اتخاذ کنن اون حیف این ذهن ها ما پای اعتقادمون اینه که فقط آقای خوبی بود که میفهمید من این اعتقاد ندارم من اعتقاد دارم که هزاران طلبه مافوق آقای خویی انتهای کشف استعداد میخواد به طلبه بگو مراجعه میکن. چه مرضی ما همیشه بیان بندازیم به که دیگران بلد بودن و ادم‌ها می‌خوندن و ما نمیخونیم نه اینطور نیست الان ها بیشتر از آقای خویی زحمت میکشن. منتها راه یه مقدار اعوجاج داره دیر می‌رسن استراف داره بعد افکار زیاد شده هر یک راهی رو سلیغه رو داره پیشنهاد کنه این طلبه کار کنه دیگه و الا طلبه هستن که از همه چیز زدن از صبح تا شب دارن میرخونه قدیم اینجور نبوده قدیم هم از هزار نفر یک نفر در میامد الان از هزار نفر در نفر در, در, در میامد بهتر از بدیمه پس ما میخوایم مبنای خود آقایم که برگرده یه مقدار تاثیر بشه از رو ادبیات باشه معلوم باشه که ادبیات نفوذش خیلی خیلی بیشتر از این حرفاست اگه شخصی رو میگن شکات برای چی میگن شکات سیغه مبالغه برای چیه؟ یعنی همیشه برای کثرته که ابن مالی فقط کثرت رو آورده فقط کثرت نیست و می رو تحلیلش کرد تحلیلش کرد که معنای دوبومی هم داشته باشه حالا یه مثال دیگه بزنم کلامونا لفظ و مفید و مکست طبق اسمان و فعلان سم محر کنه می کرد اون زمان که ما داشتیم مباشر میکردم اینا رو یه تفسیر دوبومی براش پیدا کردم الان نمیدونم مالکی بود که کلام ما باید مفید باشه، درس مفید باشه و تمام کارهامون مفید باشه، کثرت و استقامت داشته باشیم و چیزهای دیگه بدون استقامت اصلا انسان پیش نمیره. اسمون، اسمون یعنی معرفت، علم. هم با سمو بش، هم با وضعم هر دو بهش میخوره. اسمون یعنی اول پیدا کنیم و معرفت پیدا کنیم و پیدا بعدا همون که معرفت پیدا کردی انجام بدیم. ثم و بعدا تراخی حرفون یعنی هر چیزی بی ربط بنداز دور ثم حرفون یعنی ثم ترفون ترها و حواشی و به در نخورا رو بریز دور و این میشه یه زندگی خیلی خوب این معنای استقامت میشه اسم و فعل ثم حرفون ثم بر با معنای کی به تراخی تراخی تمام اطراف حواشی چیزی داری در زندگی ولی ما چیزایی که در نخور میاریم مخش می‌کنیم مخش نمی‌کنیم حاشیه خراب میشه پس میشه اینها رو انسان یه طور دیگه هم تفسیر کنه. چیزی که خود رو دباق میگن من در این اشعار مخزمی یه بعضی از موارد بر میخوردم به این چیزی که شاعر اون ناز معشوقه خودش رو با یک کسه فتحه کردن میخواد بفرمین و تو اشعار ما و شواهد می که این ضرورت شعری بود یا اصلا قلب ترجمه میکنه همین جام هم مشتماهیت منشیرو قداتازو میکرد. به خاطر ادبیات در اون اتقان واقعی خودیشه. میشه قطا رو انسان از این وادی نگاه کنن قطا منزه و فقط فقها هم همین میخوام بگن اسابه به معنای دوم همینه همین دیگه یعنی منشه و نداره قطع ذاتیه به خاطر منشه منش نداره. بحث ذاتیه. بحث ذاتی و جیت ذاتیه داره برای خودت و خدای خودت قدرت میخوره. به درد اغلا نمیخوره اغلا چیزی رو حجت میدونن که معذوریتش فل است من اینطور نیست که به هر چیزی قدع پیدا کردن بتونم انجام بدم اگر ناهنجاری باشه کسی ندارم انجام بده صفحه سدو پنجاو و اما منکان سریع القد فقط رو بی مجالات تکاریف شخصی حجتان علیه ولا یکون حجتان لغیر اندر اقلا فلوقت هر قطاب حکم شرعی منتریق کتاب و سنه علیه به حجت در دون الاغلائیه. و در تمام مباعث علم و سور ما اون مفردات اقلاییش کار داریم نه اقلیشی فايعوزو دا اول امری هواز القطر حاصل الله فان القطر مودا م موجوده په این موارد سرعت القطر فان تند جزات تکالیف شرعی علی ذمت مکلف منوت به قیام مطلق الحجه علیه برو عقلی مشت. و اما عمل جاری عملی علیه القطر در خارج و ها منوتون به قیام حجیت روغلاییت علیه فیمایت علد به نظام روغلایی و شونات روغلاییه پنابراین قد پیدا کردی این از رو بزنی حق نداری بزنی مسئولیت داره حق نداری بکشین مسئولیت داره چون حجیت روغلایی نداره فلیسل قطع حجیتن این لائزانش من اسباب هر متعارفت روغلاییه فلیقت القطع حجیتون عقلیه ولی سلحا حجیتون اقلائیه ولحاسه امنالقتا یجری علاقته هزاتی علاقت لم یه تعلق به شعنات الاغلائیه و نظام الاغلائیه در پشت صفهم نوشتم که از نظر صغرایی اگه شخصی تونست به احکام شد برسه با خواب و با استولاب و جفت و رمبین ها خوب برسه و حجیت هم داریم ولی صغرایی که نمیرسه در به شرک بخواید برسید فقط همین به اون خاطر اونها که عمرشون صرف میشه یا جوانیشون صرف میشه جوانی اونها صرف میشه در یک علوم غیر اصول و فقر میرن چیزای دیگه میخونن بعدن میان در غیر جوانی میخوان اصول و فقر یاد بگیرن دیگه یاد نمیگیرن به اون خاطر میمونن و خیلی از اعلام رو من دیدم که عمرشون در جوانی صرف چیز دیگه شده بعد به خصولشون به خصول که در جوانی سرد شده نمیرسه اصلا قابل دیاز نیست مجبورن از چیزهای دیگه که فنی استفاده بشه پس این علم سخترین علمه به خاطر اینکه شما یک اشکال میکنید ده تا جواب داره. اون ده تا جواب رو خواهی باز اونا خودش شبه داره. ولی فلسفه و کلام اینطوری نیست اونها در مکتب عقری کسی بخواد یه اشکالی بکنه معلوم و حدود سوره اشکام چون دو دوتا تا چهار تا ولی در علوم اعتباری اینطور نیست شما یه چیز میگی دیگه یه چیز دیگه میگی من میگم قتا منزع و, فقط و شما بگید از سرعت داد. اون یکی میگه کثرت میگه پس اینجا مجالش خیلی وسیعه به ذا رو صرف این علم بکنید اونم نه همیشه 5 تا میگه حاصل نشد برید مال کار اینطور طور ما بعد از پنج سال گفتیم آقا حاصل نفیه مال در خارج برگه بشه نه نرید عمره انسان خیلی عزیزه برید مشغول چیز دیگه بشید این نسبت به قطر قطا بعدش هم که شبه چارمه بود که در مطرح رشده بود بعد از این هم وارد احادیث معلله میشه در این احادیث معلله هم که آقاین کتاب رو مراجعه کردید دیگه کن نفر این کتاب رو مراجعه کرده کتاب ها نداره این کتابخونه داری یا نداره کتاب کتابخونه یه مدرسه یه چیز هم. شما مدرسه یه دیگه داره کتاب کتابخونه هستن حتما وقت بزنید مراجعه کنید کتاب که ما اسمشو میاریم بلو شدی یک بار اینا رو زیارت کنید دیدنش میارده این چه مطالی بعدا بعدنش فرصتی خدا به شما میده و مراجعه میکنید میخونید این نسبت به این مسائل بعد این مناسباتی که گفتیم از کلام مونطلب وول کی مراجعه کرد؟ بود صففرشینا رو یادداشت کردیم بعد مفصل داشت یا جل چهار آه. خب بس چنده چهاره آقاییم پیدا کنه اینم مراجعه کنید که مناسبات حکم و موضوع وقتی میدید این مناسبات حکم و موضوع در خصوص احکام شرعیه و اقلاعیه در احکام تعبدیگی اصلا راه ندارد و کلمات عامه کلمات وقتی که مناسبات حکم و موضوع در همین موارد میخوان بگن وارده با اینکه نیست و این چیزهایی که ما نوشتیم این ها خیلی جمله است یعنی پنج دستنده چیزی که وظیفه منه همینا رو بنویسم و طوری هم بگم که مفهوم باشه در حد خودم مفهوم باشه ولی نوید درصدش پنج به شماهاست و کسی نمیتونه خودش رو گول بزنه این در انسان علا نفسهی بسیعه ولو القام آزیره یعنی ولو و هزه چیز بیاد اینطوری بود و نبود و زن نذاشت و بچه نذاشت و مشکلاتی بود هم اینا حضور پذیرفتنی نیست نوید پنج درصد سعی شما و ان لایی انسان الانسان الا ماسا حرف دیگران به درد شما نمیخوره. پنج درستد شما اینا داریم می نیستیم. بعد پیدا کنید به مش برسید بعدن هم یه نظری در مقابل این پیدا کردید و به پیدا نکردید همین مختنمه دقیقا تفسیر خوبی برای کلمات دیگرانه بعد نسبت به این کلامات محقق ناینی چند نفر مراجعه کرد. کجا پیداش کردید بعد ما... معارج محقق ناینی چند نفر مراجعه کرد اون خب این ها رو یادتاش کنم به دیگران استفاده کنم خیلی خوبه منظم بینیم سید دویت تکثیر کنم بقیه هم استفاده بس. من نمی‌دونم من معارش رو فقط نمی‌دونم که هم آخر کدوم بس. بسته خب پدشتان معلومه معارش معلومه به فهرستش هم نگم ولی من نمی‌دونم مردان که نهی اخیرا ولی نحالش داره و بعدا آوردن دیگران از عسكر دلاری خیلی مهمه یعنی اگه شما همین را تشخیص بدی دارید به ملکی اجتهاد میرسید بقیهش میدانیه یعنی اونایی که فتوا میدن رساله می‌نویسن اونها بحثاشون میدانی میشه دیگه وارث میشن درس خارجی دارن دو رو و تمام قرائن رو بررسی می‌کنن و یواش یواش پیش میره آخرش به اجتهاد مطلق مییسه بله و اصلش همه. که ما رو بلد باشم همین که بدونیم یک مطلب را چه کتاب میشه استفاده کرد و مبنای شما در علت و حکمت چی همیم و استهزار به اینکه ما این واسطه ها رو پیدا کنیم حیثیت ها رو پیدا کنیم و الان با این سیطرهی ای که ناینی بر حوزه ها داره که غیر قابل انکاره کاره به خاطر همین چهار تا است که بلد دیگر های رو بلد نبودن اون بلد بیداره بیداره بیداره بیداره آره منظم می نویسید خیلی من سابقا صرف که می خوندیم رو می نوشتم مثلا در صرف افعال به نوآوری های خیلی خوب که می شود می نوشتم اونو استاد ما می گرفتم به به هم تکسیم میکردن میدادن ولی بقیه یاد نمی نزر می میکنن اوچ کار نمی کردن همشون تلف شدن شهید شدن ورا الان با زحمت بکش حالا ببین معلم نمیدونه استاد نمیدونه اون کاری ندارن نمیخوان انسان خودش رو لاغل دور نزنه دیگه بدترین نوع حقبازیه دادم خودش رو دور بزن هر چیزی نوشتید مطالعه کردید من این میسید دیگران هم استفاده بانند زکا طلعه یه یا اینجا تکسیل کنم بذارند یا ویبلاگ چیه اونجا میذارند آقاین بردارند استفاده کنند از سمره علمشون. بعد این قسمت هایی که در رابطه با علت از کلام ناینی نوشته بودیم اقلاق که نداشتیم ما اقلاق داشتیم نداشتیم آثارش قبول بکنه فقه جدیده قبول نکنه در خلاف مبنا گفتن. علا کل تردیره یه این مبنای اینطوری طاب مشکلاتی. ولی انشالله شما ها به نظر من یک سال وقت بذارید همه چیز رو استثنا کنید تو زندگی براات نون خریدن مهم نباشه. نمیدونم بازار رفتن و زیارت رفتن و حتما شب جمز برم زیارت و حتما صبح جمعه برم دعای ب و کجا نمینده مراسم دارن برم و محرممه بریم کجا؟ به هم به تا هستگرن دار مردم عوام که نمی این بخونم. با این همه حجمه، که بر علیه مکتبی هست فقط همین طلبه ها شما میگه وقتی این طلب کنید چه جوابی به امام زمان دارید در پاکستان در افغانستان در خیلی از کشورهای اطراف با بالاترین بودجه ها دارن بر علیه اسلام کار میکنن خود مسلمان ها یعنی مایه تأثیف این که خود مسلمان ها بر علیه اسلام ها. بله مسیحیت و یهودیت خیلی کاری به اسلام ندن. یا خودشون، هم. عربستان خودشه، پاکستان خودشه، افغانستان خودشه. اینا دارن با تمام ها پیش میدن حالا ما میایم اینجا وقتمون تلف کنیم و اینکه میخوایم این بر بریم، اون بر بریم، مسافرت بریم و دلمون تنش رو، دل معنا نداره. این بر حرف های مسافرت معنا نداره. قبلا این آخر کتاب مفاتیح رو آقایم بخونم آخرین جمله‌ای که شیخ عباس قمی نوشته فرموده من اینی که دارم الان تمام میکنم نامه به دستم رسیدی که مادرم فوت کرده و شما یه دعایی موقعی که شما این دوره می‌کنید برایشون هم دعا کنید یعنی رفته 20 سال مادرش ندید اونا میمونن ولی ماهای که یه ایران سر گذاشتیم جیبمون رو برطرف کلاس اینور پیام بده و پیام بخونن چیکار زندگی نیست حضور و از انسان میگیره این همه ارتباط یه طلبه بود همیشه میمیم کلاس بعد ساعت ده میرفت اونجا زنی میزد با خوانمش حالا آره شما خوب این شده از پشت تلفن اینجا میگه بیشارم که نمیبینه چیه اگه ببینه میگه خب تعظیم مواجب اگه نمیبینه که شما داری خهم میشیه بعضی انسان خیال میکرد با یه غریبه داره ارس میزنه یعنی خیلی خیلی اندل در احباب یست قطل سلام علیکم آل شما ببین شاید باز زندین طور افت نمیزنی که محبت سوری اینها رو همه رو باید بذارید کنا یعنی انسان ذهنش باید خالی خالی باشه به قیل درس فکر نکنید علم زیادی نیازه تا سنخیت پیدا کنید با اهل علم خیلی خیلی زیاد می بعد ایام معظلم ایام مناسبیه برای اینکه انسان بتونه از همه ها استفاده کنه چون زمان با زمان فرق می‌کنه. ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعات رزنه و استفاده کنید به یکی که کتاب‌های خیلی مهم که آقاین حتماً بخونن و هضمش کنن خیلی خوبه. مال شیخ جعفر شکشنگی از اول تا آخر اونو بخونید و خیلی از عباراتش تا میتونید حفظش کنید روزی کتب آسمانی حساب میشه واقعا قلم یک قلم عادی نیست انسان هم انسان عادی نیست و محیر و قوله کتاب خیلی خوبیه اینو بخونید به انسان در این مسیر پیش رفت نباید گریتشین ها منعوت به خوندن مددهی باشی که برای پول داره میخونه پولهای میلیونی میگیرن و که شهر میزنن باید از این تاریخ باشه یعنی به اون لیاقتی برسی وقتی عبارات به بخونی خودت گریت بخونی مرحوم ملکی تبریزی میگن شبها مثلا نصفش یا سوسش رو همشت گریت مددهش هم در کار نبود چهشه به زنگی این گریه مردم عوام دیدید چقدر گریه میکنن کنن بعدن میان بیرون اسمس چشک سرانی چیزای دیگه دختربازی تاکسی ها ماهار سوال نمی کنن. هر دختری می رسن نگه می دارن. اینا شب قدرم میرن شب قدر میرن تا صبح می اونجا که اگه امشبو بخونن که افر انحراف شن این زیاده تحریف هم زیاده و خیلی است. ماه محرم و سفر خیلی از آخونده بشکم میزنن دو ملیون، سه میلیون چهار میلیون پنج میلیون خلاص میاد و مشکل حل میشه اینطوری نباید باشه اگه واقعا میرفتن به تبلیغ پول نمیگرفتن الان این نبود ولی برای پول میرن و قالبا اینطوریه این, این کتاب حتما بخونید و از خدا بخواهید که اون حالاتی که دیشون داشته شما هم داشته باشید یه بار یکی از داشت برای من نقل از حالاتیشون که یک آیه هست در سوره منا سوره اخروی نه و نوتو اهدن اهل النور اهل ان عفیزو علینا من الماء او مما رزقكم و قالو انالله حرف رمه ما علل کاملی بعد این آیه رو میگه ایشون صدر مجلس خون یک ساعت و ای مردم داشت نگه دیگه میکن صداشن صدای منشاقی نبوده صدای معمولی بوده ولیشون اعتقاد دارن گوهانی اینطور اینطوری میشه که یکی از سمراتش مرحوم توستری صاحب قاموسه که یک اوجوبه بود این آدم از حوضه رفت و حوض ازش استفاده نکرد. و این همه کتاب هایی دارد در اون انوژه انوژه که بر لومه نوشته اونزا زمان شرح لومه میخوندیم من این انوژه رو پیدا کردم چقدر این شرح خوبیه بعد به استاد گفتم استاد گفتم مگه این تو چیزی داریم گفتم نه نداریم مگه داشتیم تو میدونستیم یعنی یکی از سمرات شیفتی افرشوشتری خوده محمد طری تستری صاحب قاموس بنابراین ولی تاثیر داره در قران آقایین بخونن تعامل کنن تمام مشاغل دنیوی رو تا میتونید پایین بیارید درگیر چیزی نباشید دو, دو ساعت بریم صفحه نون وایسیم، دو ساعت بریم اون دو ساعت دیگه نیم اینها انسان رو مختلش میکنه ما دیگه به درد هیچی نمیخوره و یکی از چیزهای خوب از سنت خدا وقت تمام شده سنت های الهی غیبت، غیبت که بیا گرفته تای جای ما زمان الان هست. یک از سنت های خداست. طلبهی پیشرفت میکنه که صاحب غیبت باشه. همیشه تو دسترس نباشه. از مهمونه میزنه به پارک و از پارک میزنه به مدرسه و نه شما وقتی از درس درسی برو در خلوت خودت تا فردا. فکر کن، تعامل کن، نماز بخون. زیاد نیایدین برامون. غیبت اگه نباشه، انسان به اون مرحله ظهور نمیشه. خیلی تحصیل داره در اینکه خودتون رو متلوث به شعونات ما دینه کنید آره نه آره، آره، همه میگن منزولی دوتا تفضیح دارم یکی در مابل داتی که در مابل تفضیح موقع تا معلوم شیف دارم ها؟ ها؟ همه جاه اعراف رو ننبشم اگه هست دون رو برد ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ همه شیفت هست خالی می‌کنه که این کار رو صدا داره چی می‌خواد